با سلام به شنوندگان خوب های صوتی با یه داستان دیگه در خدمتتون هستم امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت ببریم اسم داستانمون هست شاهزاده خانوم تپه یخی یکی بود یکی نبود روزی روزگاری مردی تو مزرشت که کنار یک کوه بود زندگی میکرد و تو مزرحش یه انباری داشت که یونجه های خوش رو اونجا نیز داشت. ولی دو سالی بود که نمیتونست یونجه زیادی انبار کنه. چون دو سال بود که درست شب عید جان مقدس وقتی که یونجه ها بلند و رسیده می یکی میومد اومد سراغ اونا همه اونا رو می چید. شب عید چون هیشکی تو خونه نبود اونا متوجه نمی شدن که کی سراغ یونجه‌ها ها اومده. فقط مزرعه اونقدر خالی میشد که انگار یه گله گوسفند به جون اون افتاده این عملی بار اتفاق افتاد بار دوم اتفاق افتاد مرد دیگه تحمل نداشت که برای بار سومم این اتفاق بیفته و کاشته هاش رو از دست بده به خاطر همون به پسراش گفت که یکی از اونها باید شب عید جان مقدس کنار انبار بخوابه و خوب مراقب باشه ببینید چه کسی میادی اونجا رو میدوزده اون مرد سه تا پسر داشت که اسم پسر کوچیکش سیندرلاد بود پسر بزرگتر داوطلب شد که از مزرعه مراقبت کنه اون بهتر از هر کسی دیگه میتونست این کار رو انجام بده به خاطر همون عصر روزی که فردا شید جان مقدس بود به انبار رفت و اونجا دراز کشید وقتی هوا کاملا تاریک شد یهو صدایی شنید در پنجره ها مثل وقتی که زلزله میاد شروع به لرزیدن کرد پسر سری بلند شد و از انبار بیرون رفت اما با تعجب دید که ای مزرعه خالیه و دزدیده شدن. اون سال هم مثل سالهای گذشته اونا محصول خودشون رو از دست دادن سال بعد شب عید جان مقدس بازم مرد حرف خودش رو تکرار کرد و گفت دوست نداره که مثل سالهای گذشته محصولاش از دست بده و یکی از پسراش باید از مزرعه مراقبت کنه به خاطر پسر دومش داوطلب شد که این کار رو انجام بده اون مثل برادرش به داخل انباری رفت و اونجا خوابید تا شب فرا برسه. وقتی شب شد زلزله‌ای شدیدتر از سال قبل اتفاق افتاد پسر از خواب بیدار شد و به سرعت از انباری بیرون رفت اما از یونجه ها خبری نبود سال بعد نوبت سیندرلاد بود وقتی اون آماده میشد که به مراقبت از مزرعه بره، برادرها بهش خندیدم و اونو مسخره کردم. اونا می که فقط مونده که تو موازده به یونجه ها باشی. تو که هیچ کاری بلد نیستی فقط میتونی وسط یونجه ها بشین یا نوم بخوری. سیندرلاد به حرفای اونا اعتناعی نکرد و نزدیکای اصر رفتش به مزرعه. وارد انباری شد و اونجا دراز کشید. هنوز یه ساعتی نگذشته بود که لرزش شروع شد و صداهایی وحشتناکی به گوش رسید. سیندرلاد با خودش فکر کرد که اگه صداها از اینم ترسناکتر باشه من باید بفهمم که قضیه چیه. چند لحظه بعد لرزش دوباره شروع شد و همه چی شروع به لرزیدن کرد. اون با خودش گفتش که اگه صداها از این هم ترسناکتر باشه من باید بفهمم که قضیه چیه صدای عجیب برای بار سوم هم به گوش رسید و زمین شروع کرد به لرزیدن لرزش اونقدر شدید بود که اون با خودش فکر کرد که الان سخت فرو میریزه. یهو هم همه جا اونچنان ساکت شد که انگار همه کس و همه چیز مردن پسر با خودش گفت حتما دوباره این اتفاق رخ میده ولی اینجوری نشد و دیگه زمین نلرزید و همه چیز آروم و ساکت شد اون خوب گوش کرد یه دفعه متوجه صدای شد که شبیه علف خوردن یه اسب رو زمین بود سیندرلا در رو باز کرد و دید که یه اسبی تو مزرعه ایستاده و مشغول خوردن علف‌هاست اون اسب اونقدر بزرگ و چاق و زیبا بود که سیندرلا تا اون وقت همچین اسبی ندیده بود یک زین و افسارم رو پشت اسب بود تعدادیم سلاح و چاقوی مختلف که همهشون از مس بودن و خیلی هم براق بودن رو پشت اسب دیده میشد. سدللد با خودش فکر کرد فهمیدم همین اسبه که هر سال یونجه های ما رو میخوره. حالا حالش رو جا میارم. به داخل انبار رفته شد شمشیرش رو آورد و به طرف اسب پرتاب کرد. اما از انگار قدرت حرکت نداشت، اونقدر اهلی رام بود که پسر هر کاری میخواست میتونست باهاش انجام بده. به خاطر هم بود. سیندرلا سوار اسب شد و کمی با اون اسب سواری کرد و بعدم اون رو یه جا بست. وقتی که به خونه رفت برادرا بهش خندیدن و ازش خواستن که تعریف کنه چیکار کرده. برادرا گفتن حتما تو هم نتیجه نگرفتی. و حالا برای اینکه رود نره اینقدر دیر اومدی. پسرکو من تا طلو آفتاب تو انباری خوابیدم. بلی هیچ صدای ترسناکی نشنیدم و چیز وحشتناکیم هم ندیدم. نمیتونم شما دو نفر چرا اینقدر ترسیدید دید. برادر رو گفتن به زودی معلوم میشه که تو اصلا مراقب به مزرعه بودی یا نه؟ اونا همگی با هم به مزرعه رفتم و با تعجب دیدن که همه گیاه و یونجه ها سر جاشون هستن و هیچ اتفاقی نیفتاده. بازم شب عید جان مقدس سه سال بعد دوباره اتفاق سال گذشته پیش اومد. بازم هیچ کدوم از برادر را نکردند نکردن که به مراقبت از مزرعه برن ولی این بارم سیندرلاد قبول کرد که این کار را انجام بده. بازم همه چی درست مثل سال گذشته پیش رفت. اول صدای مهیبی به گوش رسید بعد زلزله اول بعد زلزله دوم دو و بعد از اونم سوم اتفاق افتاد هر سه تا زلزله از سالهای گذشته شدیدتر بودن. بعد از زلزله همه چیز آروم بود انگاری که همه مردند پسر فقط صدای جویدن موجودی رو میشنید مثل اینکه کسی مشغول جویدن چیزی باشه سیندرلاد بلند شد و به آرومی در و باز کرد و بیرون رفت. متوجه شد یه اسبی پشت دیوار ایستاده، و مشغول جویدن و خوردن علفه. این اسب از اسب سال گذشته چاقتر و بزرگتر بود. رو پشتشم زین و افسار بود. تو خورجینشم چند تا چاقو از نقره بود که هر کسی آرزو داشت یه همچین چاقویی داشته باشه. پسر با خودش فکر کرد که آیا تو هستی که همچین یونجه های ما رو میخوری حالا کارت رو میسازم. بعد شمشیرش رو برداشت و به طرف از پرتاب کرد ولی اون حیوون مثل یه بره آروم ایستاده بود. پسر که دید از چقدر آرومه سوارش شد و در اطراف مزرعه یک کم سواری کرد و بعدم به خونه برگشت. برادر گفتن ما فکر میکنیم که تو این دفعه هم کاری انجام ندادی. سیندرلاد گفت حالا میبینیم. همه با هم به مزرعه رفتن و دیدن که همه ایونجه ها کامل و سالم سر جاشه. اما این مسئله باعث نشد که برادرها با سیندرلاد مهربون بشن. بازم سال بعد شد شب عید کسی جورت نمیکرد به مراقبت از مزرعه بره و دوباره سیندرلا تنها کسی بود که قبول کرد این کار رو انجام بده بازم همه چی مثل سالهای گذشته اتفاق افتاد سه تا زلزله که یکی از دیگری شدیدتر بود و بعد از اون همه چیز اونقدر آروم میشد که گویی همه مردن و بعدم صدای جویدن همیشگی به گوش رسید بازم وقتی اون از انبار اومد بیرون دید اسب چاق و بزرگتری از دوتا اسب گذشته مشغول جویدن یونجی هاست. بازم سیندرلات با خودش فکر کرد که آها اه پس تو میخوای یونجه های ما رو بخوری. حالا حالا تو جا میارم. و شمشیرش رو در تا به سوی اون پرتاب کنه. اما اسب خیلی آروم ایستاد تا پسر هر کاری دوست داره باش انجام بده. پسر رو پشت اسب سوار شد و کمی باهاش دور زد و بعدم برگشت بخونه دو برادرش اونو مسخره کردن و گفتن که حتما چیزایی که تعریف میکنه خواب دیده سیندرلاد به حرفای اونها زیاد اهمیتی نداد و همه با هم به دیدن مزرئه رفتن و دیدن که همه یونجه ها سر جاشونه. پادشاه کشوری که سیندرلاد در زندگی میکرد یه دختر داشت پادشاه گفته بود که دخترش رو به کسی میده که بتونه از تپه یخی که تو نزدیکی قصر هستش بالا بره. تپه یخی سراسر پوشیده شده بود از یخ و تو بالاترین نقطه تپه دختر پادشاه نشسته بود و سه تا سیپ تلا تو دامنش داشت. هر کسی میتونست به بالای تپه بره و سیب رو بگیره. اگه این کارو میکرد اجازه داشت که با دختر پادشاه ازدواج کنه و صاحب نیمی از پادشاهی بشه پادشاه این مسئله رو در کشور خودش و چند تا سرزمین همسایه اعلام کرده بود شاهزاده خانم دختر خیلی زیبایی بود و هر کسی اونو میدید فورا دلباخته او میشد تمام شهزاده آرزو داشتن که اون دختر و نیمی از پادشاهی رو به دست بیارن. بنابراین با اسبهای قوی و زیبا از تمام کشورها به سوی قصر راه افتاده بودند اسبا اونقدر چابک بودند که انگاری به جای راه رفتن دارن پرواز میکنن. تقریبا همه شهزاده مطمئن بودند که خودشون میتونن شاهزاده خانم رو به دست بیارن. بلاخره روز موعود فرا رسید. شاهزاده های سرزمین های دور و نزدیک با اسب های خودشون پای تپه یخی حاضر شدند. مردم شهر هم دوون دوون خودشون را به اونجا رسونده بودند تا ببینم بالاخره دختر پادشاه نصیب چه کسی میشه. دو تا برادری سیندرلاد به پای کوه رفته بودن ولی جرئت نداشتن که در بین اون همه شاهزاده از کوه بالا برن. چون ظاهرا اونا اونقدر کثیف و نامرتب بودن که اگرم میخواستن خودشون رو میونه اونا جا بدن حتما همه بهشون میخندیدن سیندرلاد گفت ولی اشکالی نداره من تنها میرم با شروع مسابقه همه اونها شروع به بالا رفتن از تپه کردند. اما اسبای اونها با تمام قدرتی که داشتند نمیتونستن از یخ بالا برن و مدام لیز میخوردن. هر هرچی سعی میکردن، اسبا فقط مقدار کمی از تپه بالا میرفتن. اما از اونجایی که همشون مشتاق بودن که دختر پادشاه و نیمی از سرزمینش رو به دست بیارن، اهمیتی نمیدادند و سعی و تلاش خودشون رو دوباره از سر گرفتن این سعی و تلاش اونقدر طول کشید که از پای دیگه توانی برای جلو رفتن نداشتند. اما سوارا از پا نیفتادن و پیاده شروع سعی و تلاش کردند. شاه با خودش فکر کرد که شاید خواستش غیر منطقی بوده و بهتره که به همه شاه فرصت بده تو همین لحظه یک سوار با اسبی که تا او موقع هیشکی ندیده بود از بین شاهزادهها گذشت اسب دارای زین و افساری از جنس مس بود شاهزاده شروع به داد و فریاد کردن و به شاهزاده جدید میگفتند که سحی تلاش فایدهی نداره نمیشز تپه بالا رفت اما اون شاهزاده به حرف اونا اهمیتی نداد و یک راست از تپه بالا رفت اون بیشتر راه رو طی کرده بود و تقریبا نزدیک پایان راه بود که سر اسب رو به طرف پایین تپه برگردون. راه خانم با خودش فکر کرد که چه جوون خوشزیماییه و با خودش گفت آه اون چجوری تونسته تا نزدیک من بیاد و وقتی دید که شاهزاده در حال بازگشته یکی از سیپای طلایی رو به طرف پایین انداخت. سیب غل خورد و درست نزدیک پای شاهزاده ایستاد. اما اون به سرعت از تپه پایین اومد و اونقدر سریع از بین جمعیت گذشت و از محل دور شد که هیچکسی نفهمیده چه اتفاقی افتاده. همه این شاهزاده اون شب تصمیم گرفتن به حضور پادشاه برند و مراقب باشند که مبادا اون شاهزاده سیب طلایی رو ببره و به پادشاه نشون بده. چون خودشون چیزی نداشتن که به بادشاه بدن. شاهزاده ها یکی بعد از دیگری پیش شاه میرفتند. اون شب سیندرلاد با هییرجان همه قضیه رو تعریف کردند و گفتن که در ابتدا کسی نتونست از تپه بالا بره. اما بعد از مدتی یه نفر از راه رسید و با اسب زیباش از تپه بالا رفت اسبش زین و افساری بر راه و از جنس مس داشت. اون یک سه راه رو طی کرده بود و اگه میخواست براحتی میتونست بقیه ای راه رو هم بره ولی برگشت و راهش رو ادامه نداد. سیندرلاد گفت کاش منم اونو میدیدم. سیندرلاد مثل همیشه کنار بخاری نشسته بود با خاک سرا بازی میکرد. برادرا گفتن تو همون بهتر که همینجا کنار خاک سراب بشینی و بین اون همه شاهزاده و مردای اصیل نیای. روز بعدم برادرا پای تپه یخی رفتن. این بارم سیندرلاد از برادرش خواست که اونو همراه خودشون ببرن. ولی اونا گفتن که سیندرلاد خیلی کثیف و نامرتبی و نمیتونی همراه ما بیای. سیندرلاد گفت ای بی نداره، خودم تنها میرم. خلاصه برادرها پای تپه یخی رسیدن و شخصاده ها هم اومده بودن. اونا به پای اصفای خودشون این بار نل زده بودن تا شاید تو بالا رفتن از یخ بهشون کمک کنه. اما فایده ای نداشت. اصفای کمی بالا می رفتن و لیز می خوردن. دوباره بالا می رفتن و بازم لیز می خوردن تا اینکه اونقدر خسته شدن که دیگه نمی تونستن حرکت کنن. اما شاخ بازم فکر میکرد که باید یه فرصت دیگه به اونها داده بشه. تو همین موقع دوباره سواری با اسب زین کرده نقره ای از راه رسید. اون اونقدر تند حرکت کرد که هیچ چیز دیده نمیشد. فقط اونا دیدن که سوار سریتر از دیروز از کنار اونها گذشت و از تپه بالا رفت. زین و افسار اون از بسیار برراخ بود. و بازم شاهزاده دیگه با صدای بلند اون سوار رو صدا کرد و بهش گفت فایده ای نداره. اسب از تپه یخی بالا نمیره. اما اون سوار توجهی نکرد و یک راست از تپه بالا رفت. وقتی حدود دو ثبت راه رو ته کرد سر اسب رو برگردند و دوباره از کوه پایین اومد. شاسته خانم این سوار رو از دیگر سوار بیشتر دوست داشت و دلش میخواست فقط اون بتونه از تپه بالا بیاد به همین خاطر سیب دوم رو هم از تپه به پایین انداخت سیب بازم مثل بار قبل درست جلوی پای سوار ایستاد سوارم با سرعت از تپه پایین رفت و قبل از اینکه بقیه چیزی بفهمند از تپه دور شد اصر اون روز بازم برای اینکه اون سوار فرصت نکنه تا سیپای تلایی رو نزد پادشاه ببره، شاهصاده ها یکی پز از دیگری پیش شاه می رفتن. اون شب بازم برادرهای سیندرلات شروع کردن به تعریف کردن از قضیه و اینکه چطوری هیچ کسی نتونست از طبت بالا بره. اونا گفتن ولی بالاخره یه نفر با اسب زین کرده این نقره ای از راه رسید و فقط اون تونست از طبت بالا بره. اما دو سوم راه رو رفت و از اونجا برگشت. اون بسیار خوب سواری میکرد. شاهزاده خانم سیبه دوم رو برای اون پرتاب کرد. سیندرلاد گفت وای چقدر دوست داشتم که اونو ببینم. برادر گفتن: تو موجود کثیف و نامرتب میخواستی اون شاهزاده رو ببینی؟ روز سه ومم هم همه چیز مثل روزای گذشته پیش رفت. بازم سیندرلات خواست که با برادراش به دیدن مسابقه شاسده بره. ولی برادراش اونو نبردن. دوباره همه پای کوه یخی استاده بودن و هیچ کسی نمیتونست بالا بره. همگی منتظر بودن تا قهرمان تپه از راه برسه. اما این بار ازش خبری نشد. بالاخره بعد از مدت خیلی زیادی سواری از راه رسید. اون اسبی داشت که تا اون موقع هیچ کسی ندیده بود سوار دارای زرهی طلایی بود و اسبشم یک زین طلایی داشت اون اونقدر سریع از کنار شاهزاده ها گذشت که اونها حتی فرصت نکردند که بهش بگن سعی و تلاشش بیفایده است و اون نمیتونه از تپه بالا بره اون به سرعت از تپه بالا رفت انگاری که اصلا یخی وجود نداره. انقدر سریع این کار انجام داد که شاهزاده خانم حتی فرصت نکرد آرزو کنه که تمام راه رو بالا بیاد. سوار به سرعت به بالای تپه رسید و سومین سیب طلایی رو از دامن شاهزاده خانم برداشت. و از همون راهی که اومده بود برگشت همه از تعجب خشکشون زده بود. شب وقتی برادر را به خونه رفتن، چیزای زیادی داشتن که تعریف کنم. اونا گفتن سواری با یه زره طلایی از راه رسید. اون یه قهرمان واقعی بود. ما مطمئنیم که هیچکس در این دنیا مثل اون نیست. سیندرلا گفت، ای کاش میتونستم اونو ببینم. برادر گفتند گفتن، فقط همین مونده که تو موجود سیاه و کسیف به دیدن یه قهرمان بریم روز بعد همه شاهزاده ها پیش شاه و دخترش حاضر شدند. اما هیچ کدوم از اونها سیب تلایی نداشتند که تا تحویل شاه بدن. شاه گفت اما یه نفر موفق به گرفتن سیپای طلایی شده. ما همه با چشمای خودمون دیدیم که یه نفر سیپای تلایی رو از شاهزاده خانم گرفته. اون دستور داد که همه اونا یکی یکی بیان و خودشون اعتراف کنند که سیب تلایی ندارن. همه این این کار رو انجام دادن حتی همه ی شهر هم پیش شاه رفتند و قسم خوردن که سیب تلایی تو دست اونا نیست. برادرای سیندرلادم هم همین کار رو کردن. شاه پرسید آیا جوان دیگه ای هم در پادشاهی اون باقی مونده یا نه؟ برادری سیندرلاد گفتند بله ولی امکان نداره که سیب طلا تو دست اون باشه. اون ته سه روزی که مسابقه بوده از خونه حتی بیرون نیومده. شاه گفت اهمیتی نداره بذارید اونم بیاد و با زبون خودش بگه. بنابراین سیندرلاد رو به قصر شاه بردن. شاه پرسید آیا تو سیب تلایی رو تصاحب کردی؟ سیندرلاد گفت بله این سه سیب طلایی شاهزاد خانومه و سه تا سیب رو از جیبش در آورد و به پادشاه نشون داد پادشاه گفت تو میتونی با دختر من ازدواج کنی و نیمی از پادشاهی منو تصاحب کنی بنابراین جشن بزرگی به شد و سیندرلاد با دختر پادشاه ازدواج کرد و صاحب نیمی از مملکت شد. همه برای تبریک پیش اون رفتن و شهستاده های دیگه که آرزو داشتن با شاهزاده خانم ازدواج کنن همگی به سیندرلاد حسرت بردن. امیدوارم که از شنیدن داستان ما لذت برده باشید و منتظر داستانهای بعدی ما باشیم.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 همه و همه و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانهای صوتی اتساین مهران دوستی